شب عجب شب پر است و صداها چگونه از تصویرها تبعیت میکنند همه همه همه میدوند همه میدوند تا همین چند لحظه پیش مگر نبود که همه خاموش و سر به زیر ایستاده بودند من فریاد میکشم مغلها و میشنوم شنیدم که دیگری هم میگوید مغلها مغلها مغلها مغلها و می شنوم که تنی چند می‌گویند و هیچ کس در سراسر خطه دانشگاه این سوی آن سوی خیابان و دوان در وسط خیابان نیست که از اعماق وجود یا زیر لب مغلها را باز نگوید اتوبوسی رد می‌شود که در آن مردم یک صدا چنان که گویی سرود مقدس ملی خیش را می‌خوانند با گره گره‌کرده‌ای از ها بیرون آمده فریاد می‌کشند مغلها مغلها و نه حتی مرگ بر مغلها بل با همان ایجاز تاریخی سوزان و من حال شب در بستر کنار اصل بیدار مانده به خاطر آن همه تصویر و صوت مهاجم می که آنها اتوبوس نشینها از ماجرای تهاجم مغلها به چادر شب تکه تکه تک من چه خبر داشتند از کجا آمده بودند و به کجا می رفتند؟ این اما به فکرم می رسد که چه خوب که مهی وجود نداشت و مشتهای آنها در تن فرو نرفته بود و میندیشم که آنها شاید زمانی در مدرسه هایشان در درس تاریخ حمله مغلها را خانده باشند و نفرتشان یک نفرت تاریخیست نعاطفی بله، ابتدا مثل مرگ بی صدا بودن مردم را می گویم. امروز را می گویم. بعد صدایشان که برآمد، خیال کن که دماوند خاموش به شوق افشانی گرفتار شد درست آن زمان که هیچ مأموری انتظار ندارد که آبری نفسی به جسارتی بکشد یک بار چگی قویکر کننده و هزار سوی ب مورانست را دیوانه می کند. نگاه کن: ما ملت خاموش خاموش تو سری خور هرگز اینقدر پرخروش و یاقی نبوده ایم. و ما ملت یاقی پرخروش هرگز اینقدر خاموش و سر بزیر نبوده ایم. ما ملت عاشق چقدر خوب میدانیم؟ که چگونه میتوان به ضرورت صدا را مثل نفرت به سکوت تبدیل کرد. گونه که میدانیم چگونه میتوان نان تازه را خوش کرد و نگه داشت برای روز مبادا و گوشت را قرمه کرد و نگه داشت و ماهی را نمکسود و دود زده کرد و نگه داشت و امید را مثل یک قرآن خطی بسیار کهنه در پوششی از مخمل سبز در ته صندوقی قدیمی نگه داشت ما ملت چقدر خوب می دانیم که کی باید به یک صدای برخواسته بظاهر آرام با میلیون صدای رسای خوفنگیز پاسخ بدهیم یک ملت عاشق، مثل ملت ما ملتی است که به هنگام نعره کشیدن به هنگام جنگیدن چگونه نعره کشیدن به چگونه جنگیدن را خوب می‌داند. یک ملت آشق مثل یک قطع سنگ عظیم حجیم قولاسا در دیواره کوهی رفی خاموش است و آرام و موقر. مگر در آن لحظه هراسنگیز که بخواهد به قصد له کردن از دیواره جدا شود. می‌دانی یک ملت عاشق را نمی توان مثل یک گیل مرد آشق توصیف کرد و کوچک نکرد. این ملت عاشق که گلیمش را دست کم ده هزار سال از تن دریا دریا آب بیرون کشیده است باز هم تا ابد هم خواهد کشید. حال رها کن و از فردای گیل مرد عاشق بگو. آیا زیر پله آنها را قبول می کنی؟ اگر تو نگویی نکن چرا نکنم؟ چند روز دیگر بچه من شیر می‌خواهند و تو دست گلی که بوی همان گلهای کوتاه بیابانی را بدهد میخواهی یک کتاب کهن فروشی کوچک زیر پله خیلی از دردهایمان را دوا خواهد کرد. اما خودت نمی توانی به آنجا بروی. مگر آنکه مه آنقدر قلیز باشد که مأموران سواک از فاصله سفر هم نتوانند تو را ببینند. مه را به من قول دادی که فراموش کنی. یک روز عاقبت من و تو هم به آنجا خواهیم رفت. و کتاب های کهنه خطی خواهیم فروخت یک روز خواهی دید دوست دارم که کتاب سیاسی ممنوع بفروشم تا عتیقه هر ممنوعی از این گونه به تدریج عتیقه خواهد شد و هر عتیقهی سرشار از زندگی بخوابیم شبی با آسمانی چونین شفاف با بوی هزار اتر درآمیخته با این همه آواز جیرجیرکها پای دیوار سوالان چرا باید تن به خفتن سپرد؟ چرا باید که چشمها راه حضور ستارگان را بست؟ عاشق شب را به خاطر شب بودنش دوست دارد؟ نه به خاطر آنکه که میتوان ندیده اش گرفت خیشتن را در محبس اتاقی محبوس کرد و به قتل عام تصویرها و اسوات موسیقای شبانه مشهور شد عاشق خوابالوده نیست شیفته بیداری است عاشق صدای نسیم شبانه را عبادت می کند تا ایاز چند روز بعد که زیر پله را گرفتیم و چند ساعتی را به وسوسه در چیدن کتابها به آن جوان خاموش کمک کردم حادثه قریب نزانوانم را که سختترین صخرهٔ روحم را به لرزه انداخت کسانی میآمدند سرک میکشیدند سلام میکردند تبریک میگفتند و میرفتند زنی آمد سلام کرد مرا با چشمانش محک زد دو جلد کتاب کهنه به سویم دراز کرد و گفت اینها را آن روز که مغلها کتابهایتان را قارت کردند من برداشتم ممنون خانم کتابها را گرفتم مال من نبود زن رفته بود زمانی بعد دو مرد رسیدند هر یک برجی کوتاه. از کتاب به سویم دراز کردند سلام آقا اینها را آن روز اما من کتابهایم را میشناسم. شناسم دو مرد بی جواب رفتند و زمانی بعد این کتاب کنار جوی افتاده بود آن روز که مغلها حمله کردند و زمانی بعد پیرمردی با عینک و اسایش جوان این حافظ مال شماست جلدش کمی صدمه دیده، انگار که زیر سم سطوران مغلان بوده، اما به هر حال حافظ است جوان، فرقی که ندارد. عجب تهاجمی خدای من، آن صد جلد کتاب که از خانه آورده بودم تا ساعتی بعد انبوه شد و انبوه در میان آنها کتابهایی بود کاملا نو، اتر جلد نو داشتند، پوشش شفافشان به دست می چسبید و کتابهایی که هرگز آنها را ندیده بودم و نمیتوانستم رد کنم نمیتوانستم دیگر حتی نمیتوانستم بگویم متشکرم آقا متشکرم خانوم متشکرم دخترم دیگر از این حرفها گذشته بود آنها مثل یک گروه بزرگ نوازنده سازهایشان را بی صدا کوک میکردند بی صدا آنها به زودی دست جمعی در تالاری عظیم می نواخدند. یک آشغانه آرام را. شاید خونین اما متین و آرام.